از جمله چیزایی که من یادداشت کردم که عرض بکنم که خواه خوشبختانه اینجا در بازدید امروز دیدیم که مورد توجه هست یکی مسئله تولید و مسئله تحقیق و توسعه است که بسیار مهمه که خب دیدم به یه بخش مهمی رو اختصاص دادن به تحقیق و توسعه که خیلی مهمه